عزیزان به نظر شما اطاعت، قدوسیت و خداشناسی در کور چه چیزایی دارند؟ ما هیچ کدوم از اونها رو بدون کمک نمیتونیم به دست بیاریم و کمک زیادی نیاز داریم. به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. خوشحالیم که تصمیم گرفتید در بررسی کلام خدا به ما بپیوندیم. در درس امروز معلم ما ما رو به کتاب دوم پتروز خواهد برد و به ما یادآوری میکنه که خدا منبع تمام کمکهایی که ما نیاز داریم. پس بیاید با هم به درس امروز از کلام خدا گوش کنیم. بررسی مستمر ما از کتاب مقدس از کتاب پیدایش شروع شده و حالا با هم به نامه دوم پتروس رسیده ایم که در این جلسه اون رو بررسی خواهیم کرد. نامی دوم پتروس اینطور شروع میشه. از طرف شمعون پتروس، غلام و رسول ایسای مسیح، به آنانی که از راه نیکی مطلق خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح، ایمانی مانند ایمان ما یافتند. در حالی که شناخت شما از خدا و ایسای مسیح خداوند، زیادتر می شود، فیض و آرامش شما نیز افزون گردد. قدرت الهی آنچرا که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی که ما را خانده است تا در جلال و عظمتش سحیم شویم، بهتر بشناسیم. بنابراین از وعده های بزرگ و گرانبها ها شده و در نتیجه از فسادی که زائیده تمایلات جسمانیست بگریزید و در الوهیت خدا شریک و سحیم شوید. به این سبب شما باید سخت بکوشید که ایمان خود را با جوانمردی جوانمردی را با معرفت، معرفت را با پرهیزگاری، پرهیزگاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی، خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید. اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد، همیشه در شناسایی خداوند ما عیسی مسیح فعال و پرسمر خواهید بود. با این سخنان، پتروس نامه دومش را شروع می کنه. نامه دوم پتروس در همان زمان و همان شرایط سیاسی نوشته شده، که نامه دوم تیموتاوس نوشته شده پولوس نامه دوم تیموتاوس رو زمانی نوشت که میدانست خواهد مرد جفاهایی که پتروس در نامه اولش از اون صحبت کرده بود حالا در شهر روم بسیار شدیدتر شده و اون جفاها به شدت در حال گسترش به دیگر ایالات آسیای صغیر بود پتروس در این نامه دوم به ما میگه که مرگ حتمی او انگیزه نوشتن این نامه بوده در حالی که او انگیزه خودش از نوشتن این نامه رو با ما در میان میذاره اینطور میگه. به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم. اگر شما اینها را میدانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت هستید. دکتر ساموئل جانسون نویسنده و منتقد معروف قرن هفدهم گفته شاید کاملا درک نشده که انسان بیشتر از آموزش به یادآوری نیاز دارد. من فکر می‌کنم یک معلم خوب این رو می‌دونه. یک بار از یک معلم شنیدم که می‌گفت تکرار اساس تعلیم هست. کس دیگری گفته اگر تکرار نکنید نمیتونید تعلیم بدید. از این رو پتروس که شبان با حکمت و کارآزموده ای بود، می‌دونست که غالباً یاداوری مهمتر از تعلیم دادن هست. وقتی او انگیزه خودش رو در مورد نوشتن این نامه با ما در میوم می‌ذاره، به ما میگه که بزودی خیمه خودش رو جمع خواهد کرد. او به زودی جسمش را از دست خواهد داد او خواهد مرد به همان ترتیبی که خداوند ایسای مسیح به اونشون داده بود که خواهد مرد یادتونه که عیسی در آخرین باب از انجیل به پتروس گفت که به خاطر مسیح خواهد مرد حالا با وجودی که میدونست روزهای زیادی از زندگیش نمونده این شبان کار کشته دست زیر بغلش میزنه و قلبش رو با اونها در میون میذاره و چیزهایی رو به اونها میگه که اونها از قبل می دونستن. اما او میخواست مطمئن بشه، اونها به یاد داشته باشن. وقتی شروع به بررسی نامه های پطرس کردیم، گفتیم که موضوع اصلی که ما بارها و بارها در نامه های او میبینیم، شناخت شخصی پطرس از خدا هست. ملاحظه کنید او چطور از شناختن خدا صحبت میکنه که به قول او مهمترین چیز هست. پطرس به ما در آیات اول خودش میگه که فیض و آرامش خدا میتونه توسط شناخت خدا و خداوند مسیح بر ما قرار بگیره. این امکان هست که خدا را بشناسیم این امکان هست که ایسای مسیح رو بشناسیم و با شناخت خدا و شناخت مسیح فیض و آرامش میتونه در ما زیاد بشه او همینطور در آیه 3 در حرفای مقدماتی خودش میگه قدرت الهی آنچرا که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم چطور میتونیم تمام این چیزهایی را که خدا قبلا به ما داده در زندگی خودمون به طور شایسته به کار بگیریم این شبیه حرفای پولس هست. پولس در افسوسیان یک سه میگوید خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی بهرهمند ساخته است و بعد پولس به ما میگه برکات در کجا هستند او میگه برکات در مسیح عیسی در جایهای آسمانی هست این چیزی که پولس در افسسیان یکسه میگه پتروس هم در واقع همون چیز رو میگه او میگه قدرت الهی آنچرا که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است تا بتوانیم کسی که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم این پتروس رو هدایت میکنه که اینطور اظهار کنه قدرت الهی آنچرا که ما برای زندگی و خداپرستی نیاز داریم به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسی که ما را خوانده است تا در جلال و عظمتش سهیم شویم بهتر بشناسیم بنابراین از وعده های بزرگ و گرانبها بهره‌مند شده و در نتیجه از فسادی که زاییده تمایلات جسمانی است بگریزید و در الوهیت خدا شریک و سهیم شوید این برای ما امکان پذیر هست که شریک طبیعت الهی خدا شویم برای ما این امکان وجود دارد که از خدا فیض دریافت کنیم این امکان وجود دارد که وارد بودهای آسمانی بشیم و به حضور الهی برسیم و با شناخت خدا این امکان برای خدا وجود داره که هر چیزی رو که ما برای زندگی خداشناسان نیاز داریم به ما عطا کنه وقتی این چیزها وارد زندگی ما میشه خداشناسی به عنوان محصول جانبی رابطه ما با او به زندگی ما وارد میشه دقیقا منظورش چیزی هست که یعقوب در چهار هشته نامه یعقوب میگه و به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید. پولس در سخنانش گفته برای خدا این امکان هست که تمام برکات روحانی رو به ما بده. اگر ما بیاییم و در مسیح ساکن بشیم میتونیم از تمام برکات روحانی به شایستگی دریافت کنیم. به قول پطرس، اونها وعده ارزشمندی هستند و با به کارگیری اون وعده ارزشمند ما میتوانیم شریک طبیعت الهی بشدیم قدرت و نیروی روحانی رو که خدا ترک کرده از آن ما باشه تساهل کنیم، اون به ارزش ایمانی شما اضافه میشه و بعد به شناخت شما از خدا منتهی میشه. پتروس در ادامه میگه معرفت را با پرهیزکاری پرهیزکاری را با بردباری، بردباری را با خداشناسی خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه را با محبت خالص تکمیل کنید. ما امروزه می دونیم که دانش یک ارزش هست. براساس فرهنگ ما داشتن آگاهی ارزشمند هست. به این دلیل هست که اگر شما دکترا داشته باشید، از جایگاه بالاتری برخوردارید. داشتن دکترا ارزشمند می میدونیم چون که اون نشون میده که ما صاحب معلومات زیادی هستیم. اما در مسائل روحانی کتاب مقدس مکررن به ما میگه براساس چیزی که از انبیا و رسولان شنیدیم دانش ارزش نیست. به کارگیری دانش هست که به اون ارزش میده ملاحظه میکنید که پتروس نمیگه به ایمانتون دانش اضافه کنیم این کاریه که ما میکنیم وقتی کسی ایمان میاره اولین کاری که میکنیم چیه؟ ما انواع کتاب ها و دوره رو برای او آماده میکنیم و به او میگیم اگر واقعا ایمان آوردی باید این کتاب ها رو بخونی یا به دانشکده کتاب مقدس بری یا کتاب مقدس رو بگذری. ما شاگرد جدید رو با اطلاعات و دانش و اینجور چیزها بمباران می کنیم. چیزی که میگیم در واقع اینه که به او توصیه می کنیم که دانش رو به ایمان اضافه کن اما اگر ما این رو فراموش کنیم مطلب بزرگی رو از دست میدیم پطرس میگه به ایمان خودتون ارزش اضافه کنید ارزش به ایمانتون هست که نیکویی به بار میاره. ارزش شخصیت هست وقتی شما موفق شدید که ارزش یا شخصیتی مسیح گونه را به ایمانتون اضافه کنید بعد از اون دانش رو اضافه کنید. این نظر پطرس هست. به نظر پولس مهمترین چیز درباره دانش روحانی به کارگیری اون دانش است. به این دلیلی که وقتی شما در دانشکده یک کوچک کتاب مقدس مطالعه می کنید، ملاحظه می کنید که راه کار و تأکید ما دائما بر این هست که کاربردی عملی از محتوای کتاب مقدس به دست بیاریم و هدف ما این نیست که متخصصان کتاب مقدس یا افرادی با دانش زیاد کتاب مقدسی تربیت کنیم. هدف ما این هست که با آمدن به طرف کتاب مقدس مردم تبدیل میشن. چون کتاب مقدس در رومیان باب ده آیه هفده میگه ایمان از شنیدن کلام میآید. وقتی مردم ایمان آوردن و تبدیل شدن بعد از اون مهمترین چیز ارزش هست. مهمترین چیز اینه که بدونیم این متن چی میگه. معنی اون چیه؟ و معنی اون برای من چیه و چطور میتونم این متن رو در عرصه های عملی زندگیم به کار بگیرم با کاربرد کتاب مقدس هست که کتاب مقدس پویا خواهد شد معرفت را با پرهیزکاری پرهیزکاری را با بردباری بردباری را با خداشناسی خداشناسی را با دوستی برادرانه و دوستی برادرانه رو با محبت خالص تکمیل کنیم این چیزهایی که به ایمان اضافه میشه یکی از عالی ترین ها در کتاب مقدس هست که به مسئله رشد روحانی مربوط میشه. این اظهار زیبای این واقعیت هست که شاگردان باید به لحاظ روحانی رشد کنن. بعد اگر شاگردان این چیزهای اضافه شده به ایمان رو تجربه کردن بعد از اون این وعده ها رو دارید. اگر این صفات در شما باشد و زندگی شما را بیشتر فراگیرد همیشه در شناسایی خداوند ما مسیح. فعال و پرسمر خواهید بود قادر خواهید بود زندگی خوب و قدرتمندی برای خداوند داشته باشید و ثابت خواهید کرد که شما جز خانده شدگان خداوند هستید از خواندگی و برگزیدگی خودتون اطمینان حاصل خواهید کرد وارد آسمان خواهید شد و تا زمانی که وارد آسمان بشید هرگز نخواهید لغزید به این تفسیر زیبای این متن زیبا گوش کنید برای کسب این این شما به چیزی بیش از ایمان نیاز دارید شما باید سخت بکوشید تا خوب باشید و حتی این هم کافی نیست چون بعد از اون شما باید یاد بگیرید خدا رو بهتر بشناسید و بدونید خدا از شما میخواد چیکار کنید بعد یاد بگیرید که امیال خودتون رو کنار بذارید تا صبور و خدا شناس بشید با شادمانی اجازه بدید خدا شما رو به راه خودش ببره این قدم بعدی را برای شما امکان پذیر خواهد کرد که لذت بردن از دیگران و دوست داشتن آنها هست و بالاخره شما در محبت به اونها عمیقا رشد خواهید کرد. هرچقدر بیشتر در این مسیر پیش برید بیشتر به لحاظ روحانی رشد خواهید کرد و برای خداوند لیسا مسیح قویتر مصمر سمرتر و مفید تر خواهید شد. اما هر کسی که بعد از اضافه شدن این چیزها به ایمانش نخواد رشد بکنه در واقع کور هست. یا دست بسیار کتفکر است و فراموش کرده که خدا او را از زندگی گذشته و از گناه آزاد کرده تا اینکه حالا او بتونه با قدرت برای خداوند خوب زندگی کنه پس برادران عزیز سخت بکوشید تا ثابت کنید شما واقعا در بین شدگان و برگزیدگان خداوند هستید و بعد از اون شما هرگز نخواهید لغزید و منحرف نخواهید شد و خدا درهای آسمان را برای شما باز خواهد کرد تا وارد پادشاهی ابدی خداوند و منجی منیسای مسیح شدی. پتروس در باب اول پیش میره و در آیات دوازده تا 15 هدف خودش را از نوشتن این نامه به ما میگه. او میگه به این جهت من تصمیم گرفتم که همیشه این چیزها را به یاد شما بیاورم اگرچه شما اینها را میدانید و در حقیقتی که یافته اید ثابت هستید. ولی من تا زنده هستم صلاح میدانم که با یادآوری و تذکر شما را برانگیزم من میدونم که به زودی چنان که خداوند عیسی مسیح به من نشان داد این خیمه را ترک خواهم نمود پس نهایت کوشش خود را خواهم کرد تا پس از مرگ من شما بتوانید در همه اوقات این مطالب را به یاد آورید وقتی پتروس منظور خودش از نوشتن این نامه را به ما میگه چهار بار از کلمه یادآوری استفاده میکنه هدف پتروس این هست که چیزهایی رو که از قبل میدونستیم به یادمون بیاره اساسا چیزهایی که در کلام خدا هستند، این برای من خیلی جالبه که در نامه و آخرین شهادت پولس که در دوم تیموتاوس است، او هم جمله بزرگی در رابطه با کتاب مقدس به ما میده. در نامه و آخرین شهادت پتروس که دوم پتروس هست او هم جمله زیبایی در مورد کتاب مقدس به ما میده. در باب یک آیه 16 تا 21 پتروس میگوید زیرا وقتی ما درباره قدرت خداوند ما عیسی مسیح و آمدن او سخن گفتیم به افسانه هایی که با مهارت ساخته شده اند متوسل نشدیم زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملکوتی او را دیدیم وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد ما در آنجا حاضر بودیم و آن زمان که از جلال خداوندی صدایی به او رسید که می گفت این از پسر عزیز من از او خوشنودم ما آنجا بودیم. آری ما وقتی با او بر روی کوه مقدس بودیم این صدای آسمانی را شنیدیم. این همه کلام پیامبران را برای ما بیشتر تصدیق و تایید می‌کند. پس شما باید با دقت بیشتر به آن توجه نمایید. زیرا کلام انبیا مانند چراغی است که در جایی تاریک می‌درخشد تا سپیده بدمد و ستاره صبح طلوع کرده دلهای شما را روشن گرداند. اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمیتواند به تنهایی پیشگویی‌های کتاب مقدس را تفسیر کند زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه و خواسته ی انسان به وجود نیامده است بلکه مردم تحت تأثیر روح القدس کلام خدا را بیان نمودند پولس رسول در دوم تیموتائوس باب سه آیات شانزده و هفده به ما گفته که ما کتاب مقدس را از خدا توسط پروسه ای که به اون الهام میگوییم دریافت کرده ای. کلمه ای که پروس برای الهام به کار میبره همون کلمه ای هست که برای نفس خداوند به کار میره. خدا بر این مردان دمیده و اونها کتاب مقدس رو نوشتند و آنچه را که نوشتن بدون اختیار خودشون بوده. چون نفس خداوند بر اون کلمات دمیده شده و در نتیجه اونها سخنان خداوند رو نوشتند. پتروس همون چیز رو میگه. پتروس و پولوس به زیبایی همدیگر دیگر رو تحریف کردن. پتروس کمی فراتر میره و به ما میگه که منظور اونها از چیزی که به اون الهام میگیم چیه. پتروس از کلمه یونانی فرو استفاده میکنه. فرو کلمه‌ای در زبان یونانی هست که به معنی وزش باد بر روی بادبانهای کشتی بادی هست و کشتی رو به جلو میبره. پتروس به ما میگه که وقتی این مردان این کلمات الهامی را از خدا دریافت کردن این گونه حرکت کردن چنان که گویی باد روح القدس بر بادمانهای اونها وزیده و اونها رو به حرکت در تا کلمات الهامی رو بگویند و یا بنویسند. پس نتیجه این هست که منشه اصلی هیچ آیه ای از انسان نبوده منشه اصلی آیات خود خدا بوده به این دلیلی که به کتاب مقدس کلام خدا میگیم آیا باور دارید که کتاب مقدس سخنان خدا به شما بوده؟ وقتی به این سوال در خلوت خودتون جواب دادید و اگر جواب شما اینه که باور ندارید و یا حداقل از ایمانتون به الهامی بودن کتاب مقدس مطمئن نیستید پس میخوام دو آیه از کتاب مقدس رو با شما در میون بذارم در یوحنا باب 17 آیه هده عیسی گفته کلام تو حقیقت هست در یوحنا باب 7 آیه هده عیسی گفته کسی که مایل باشد اراده او را انجام دهد خواهد دانست که تعالیم من از جانب خداست یا من فقط از خود سخن میگویم این دو آیه به ما میگن که اگر ما بخواهیم دنبال حقیقت از کتاب مقدس بگردیم و اگر مایل باشیم اون حقایق رو به کار بگیریم چون سمیمانه میخواهیم که اراده خدا رو به جا بیاریم اون موقع خواهیم فهمید که کتاب مقدس کلام خداست نه کلام انسان از شما میخوام ضمن بررسی کتاب مقدس در دانشکده کوچک کتاب مقدس در روح این دعای کلام رو بخونید. به قول ایسا تنها کسانی به تعالیم او این گونه نزدیک شده اند شایسته هستند که درباره الهامی بودن تعالیم او و تمام کتاب مقدس اظهار نظر کنند. با چیزی که می دونید چی کار خواهید کرد. پتروس بعد از اینکه در مورد اینکه کتاب مقدس چی هست و چگونه باید به اون نزدیک بشیم صحبت کرده حالا او چیز زیبایی در مورد کتاب مقدس به ما میگه این مشاهده زیبا درباره کتاب مقدس در دوم پتروس باب اول به موازات اظهار زیبای او درباره کتاب مقدس در اول پتروس باب یک است. پتروس با یک شهادت شخصی شروع میکنه. او میگه من با او بر بالای کوه بودیم که دیدیم خداوند ایسای مسیح جلال یافت و سیمایش تغییر کرد. این نشون میده که پتروس دیده بود که ایسا تماما تغییر شکل داده چونکه که کلمه یونانی که برای این بکار رفته میتامورفیس هست. تغییر سیمای ایسا یک رویداد خاص در زندگی عیسی بود. فقط پتروس، یعقوب و یوحنا شاهد این تغییر سیمای ایسای مسیح بودند. پتروس به ما میگه اگرچه من بالاترین حد تجربیات رو داشتم میخوام چیزی به شما بگم. از اینکه کلام خدا از طریق الهام به ما میاد خیلی مطمئنتر از تجربه خودم از تغییر سیمای عیسی مسیح هستم. عیسی از زبان استعاره زیبایی استفاده میکنه. اساسا پتروس به ما میگه که چنان به کلام خدا نزدیک بشیم که گویی از تاریکی به محلی روشن و درخشان میرسیم. ما در تاریکی های خودمون به نور کلام خدا میاییم و وقتی به طرف نور میاییم چیزی در قلب ما اتفاق میافته. پتروس این اتفاق رو به زیبایی توضیح میده. این همه کلام پیامبران را برای ما بیشتر تصدیق و تایید می کند. پس شما باید با دقت بیشتر به آن توجه نمایید. زیرا کلام انبیا مانند چراغی است که در جایی تاریک میدرخشد تا سپیده بدمد و ستاره طلوع کرده دل شما را روشن گرداند. من فکر می کنم اون یکی از زیباترین استعاره ها در مورد نجات در تمامی کلام خدا هست. در اول پتروس باب یک، پتروس به ما گفته که کلام خدا تخم غیرفانی هست که تولد تازه رو در من و شما به وجود میاره. همینطور که در تولد جسمانی یک تخم و یک تخمک وجود داره، تخمی هم هست که تخمک روحانی رو در تولد روحانی بارور میکنه تا حاملگی روحانی واقع بشه. بعد از اون رشد جنین روحانی و به دنبال اون درد زایمان جدید میآید شما به کلام خدا نزدیک میشید که مانند نوری درخشان در تاریکی هست. وقتی به نور یا کلام خدا نزدیکتر میشوید و اون رو میپذیرید و توسط آنچه که به شما میگه زندگی می کنید، اتفاقی در قلبتون میافته. سپیده ای در قلبتون میدمد و ستاره صبح بالا میاد و این ستاره صبح که در قلب شما بالا میاد چیه؟ ستاره صبح عیسی مسیح زنده و قیام کرده است. پولس در نوشته اش میگوید مسیح در شما امید جلال هست. همه ما از عهد جدید میدونیم که مسیح در قلب ما ساکن میشه تا اینکه ما پویاترین معجزه عهد جدید رو تجربه کنیم که همون مسیح در شما امید جلال هست. مسیح در ما تنها امیدی هست که ما از جلال یافتگی داریم. اما مسیح اقامتگاهش رو در ما چگونه ایجاد میکنه؟ چطور او وارد اونجا میشه؟ ما مبشرین شدیداً بر دریافت مسیح تاکید می کنید. سرهای خودتون رو خم کنید و از مسیح بخواهید که وارد بشه. آیا میتونید آیه‌ای به من نشون بدید که در اونجا عیسی به کسی گفته باشه این کارو بکنه؟ آیا جایی در سراسر عهد جدید میتونید نشون بدید که رسولان گفته باشند باید مسیح رو این گونه دریافت کنی؟ در مکاشفه باب سه آیه بیست در نامه‌ای که به کلیسای لاودقیه نوشته شده به ما گفته شده که مسیح بر در قلب مایست ما داده و در میزنه اگر ما صدای او رو بشنویم و در قلبمون رو باز کنیم و او را دعوت کنیم او وارد میشه اما این آیه خطاب به کسانی نوشته شده بود که پیشاپیش پیرو مسیح بودن اما آنها پیروان ولرم مسیح بودن مسیح قیام کرده و زنده در اون متن به اونها میگه بذارید وارد عرصه مهم زندگی شما بشم و با شما دوستی کنم این آیه به ایمانداران نمیگه که چگونه مسیح را دریافت کنند متن دیگری که غالبا برای چنین دعوتی به اون استناد میشه در اولین باب از انجیل یوحنا آیات 12 و 13 هستند که میگویند اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند که نماننده های معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی بلکه از خدا تولد یافتند این متن هم به دستیابی غیر ایماندارون به مسیح اشاره نمیکنه بلکه این متن به ما میگه که در خلال سه سال خدمت عمومی خداوندمان وقتی مردم به نام او ایمان آوردن عیسی به اونها قدرت و اختیار داد که پسران خدا شوند وقتی این اتفاق افتاد اونها تولد دوباره یافتند اما این متن به ما نمیگه که وقتی مردم به نام عیسی ایمان آوردن اونها سرهای خودشون رو خم کردن و از او که وارد قلبشون بشه در محتوای این متن به ما گفته شده که دریافت کلام مترادف با باور به کلام هست پتروس به ما میگه که مسیح در ما متولد میشه فلیپ بروکس کشیش قرن هجده در سرود کریسمس خود دعا میکنه ای شهر کوچه که بیت لحم چقدر در سکوت؟ اون هدیه شگفتانگیز به تو داده شد تا خدا برکاتش را از آسمان به قلب انسانها بریزه. هیچ گوشی شاید آمدن او رو نشنیده. اما در این دنیای گناه جایی که جانهای فروتن مایلندو رو دریافت کنند، هنوز هم مسیح عزیز وارد میشه. ای کودک قدوس بیت لهم دعا میکنیم بر ما نازل شو. گناهان ما رو پاک کن و وارد شو. امروز در ما متولد شو آیا واقعا این امکان هست که مسیح امروز در ما متولد بشه؟ به نظر میرسه این چیزیه که پتروس میگه پتروس اون رو اینطور بیان میکنه کلام خدا مانند نوری هست که در تاریکی میتابه اما وقتی شما به روشنایی اون نور میایید چیزی در قلب شما اتفاق میفته سپیده میدمد و ستاره صبح در قلب شما طلوع میکند مسیح در شما متولد می شود من معتقدم این چیزیه که پتروس اینجا میگه. وقتی به پایان باب دوی دوم پتروس می رسیم، باب دو بسیار شبیه رساله یهودا هست بنابراین ما وقت زیادی رو روی باب دو سرت نخواهیم کرد این باب معلمین دروغین رو توبیخ می کنه. وقتی به باب سه می رسید، به بابی می رسید که پتروس به خاطر اون معروف است. در باب سوم پتروس از روز خداوند صحبت میکنه. آیا وقتی انبیایی مثل یوئیل و صفنیار رو مطالعه میکردیم به خاطر دارید؟ یادتون هست اونها چطور در مورد روز خداوند موعظه میکردند؟ روز خداوند واقعی در میان یک سری وقایه هست که روی هم رفته به اون آمدن ثانویه ایسای مسیح میگویند. این رو فراموش نکنی من مطالب زیادی میگم اما این رو فراموش نکنی آمدن سانویه ایسای مسیح فقط یک واقعه نیست. اون یک سری از وقایه هست. آمدن سانویه ایسای مسیح مربوط به ربایش کلیسا هست. مربوط به عذاب بزرگ هست. مربوط به پادشاهی خدا در روی زمین هست که بسیاری اون رو بینن. مربوط به قیام مردگان هست. این واقعه یا آمدن ایسای مسیح مربوط به یک سری وقایه هست که به آخرین اونها بازگشت ثانویه مسیح یا روز خداوند میگوین روز خداوند واقعی با تحولات عظیم است پتروس اینجا در باب سه دوم پتروس به ما میگه که روز خداوند همراه با از بین رفتن تمامی چیزهای مادی است نه تنها چیزهای روی زمین بلکه تمامی کائنات آیا زمین تا ابد باقی خواهد ماند عیسی مسیح گفته زمین و آسمان زایل خواهد شد آیا زمین از بین خواهد رفت؟ آیا کل جهان از بین خواهد رفت؟ به این گوش کنید ای عزیزان این دومین نامه است که به شما می نویسم در هر دو نامه سعی کردم که با یادآوری این مطالب افکار پاک شما را برانگیزنم. می سخنانی را که پیامبران مقدس در گذشته اند و فرمانی را که خداوند من نجات دهنده ما به وسیله رسولان خود به شما داد به خاطر شما بیاورم به وسیله رسولان خود به شما داد به خاطر شما بیاورم قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر اشخاصی پیدا خواهند شد که ایمان شما را مسخره خواهند نمود چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی می و خواهند گفت آن کسی که وعده داده است که می آید کجاست از زمانی که پدران ما مردن همه چیز هنوز همان طوری هست که از زمان خلقت دنیا بوده عمدن این حقیقت رو فراموش میکنند که خدا در قدیم تکلم فرمود و آسمان ها و زمین آفریده شد و زمین از آب ساخته شد و وجودش به آب بسته است و همچنین با آب بود یعنی آب سیل که دنیای کهن ویران شد اما این آسمان ها و زمینی که اکنون میبینید به وسیله همان کلام خدا نگه داشته میشود تا در روزی که بدکاران داوری خواهند شد و به کیفر خود یعنی هلاکت خواهند رسید با آتش نابود شوند اما ای عزیزان این حقیقت از شما پنهان نماند که در نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز می باشد خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضی ها گمان می کنند تحمل نمی کند بلکه با صبر شما را تحمل می نماید زیرا نمی خواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند روز خداوند مانند یک دوزت خواهد آمد در آن روز آسمان ها با صدای باد شدید ناپدید خواهند شد عناصر سوخته شده از بین خواهند رفت و زمین با هرچه در آن است خواهد گشت حال که همه این چیزها به این صورت نابود خواهند شد زندگی شما باید چقدر پاک و خداپسندانه باشد و شما باید در انتظار روز خداوند باشید و طوری کار کنید که آن روز زودتر برسد آن روزی که آسمان خواهند سوخت و نابود خواهند شد و عناصر از حرارت آن زوب خواهند گردید اما خدا آسمان تازه و زمینی تازه و داده است که در آنها نیکی مطلق مستقر خواهد بود و ما در انتظار اینها هستیم پس ای دوستان من چون در انتظار آن روز هستید نهایت کوشش خود را بنمایید که خدا شما را در آن روز با رفتاری صلح جویانه و پاک و بیعیب عیب خاطر جمع باشید که صبر و حوصله خداوند ما برای نجات شما هست همچنان که برادر عزیز ما پولس نیز با استفاده از حکمتی که خدا به او عنایت کرد به شما نوشته است در این متن پتروس حقایق عمیق زیادی رو با الهام از روح القدس به وضوح اظهار میکنه من با توجه به اظهار صریح این آیات الهامی نمیتونم درک کنم چرا هنوز کسانی هستند که میگویند زمین از بین نخواهد رفت. عیسی وقتی که از کلمه دنیا استفاده میکرد درباره باره دوره یا عصر صحبت میکرد. اما اینجا کلمه دنیا مربوط به یک دوره زمانی نمیشه. اون مربوط به زمین و آسمان هست. پتروس به وضوح اظهار میکنه که زمین و آسمان از بین خواهد رفت. همه اونها با آتش سوزانی زوب خواهند شد وقتی من بچه کوچکی بودم یادمه که پدرم من و خواهرا و برادرام و مادر و دایی و خاله و عمو و امه من و همه رو به کلیسا برد که موعزهی در این مورد گوش کنیم بعد اونها به خونه برگشتند و با هم کهک و چایی خوردیم هنوز یادمه که پدر و مادرم با امه ها و خاله ها و دایی ها و اموهای من بحث یادمه که اونها میگفتند، زمین نمیتونه از بین بره. چطور میشه عناصر زمین با حرارت زوب بشم؟ چطور میشه چیزی به این ترتیب از بین بره؟ خب وقتی در 1945 بمب اتمی به کار رفت و شهرهای هیروشیما و ناکازکی ژاپن رو نابود کرد حالا میدونیم که انسان میتونه این کار را بکنه. اگر شما حرارتی رو که از انفجار اتمی ناشی میشه به یک تکه بتون به عرض و طول یک زمین فوتبال و به ارتفاع طول یک زمین فوتبال بتابونید تمامی اون تکه به تون میشه و از بین میره و دیگه شما هیچ اثری از اون بتن نخواهید دید و نتیجه اینه که این چیزهای مادی به تون و هر چیز دیگه ای از بین میرن به تون تبدیل به هیچ میشه این چیزیه که پتروس نبوت کرده که واقع خواهد شد این چیزیه که یوئیل نبوت کرده و این چیزیه که سفنیان نبوت کرده حالا پتروس میگه که این اتفاق خواهد افتاد. کتاب مقدس همیشه گفته که این واقعه پیش خواهد اومد. هرگز نگید که خدا نمیتونه زمین را از بین ببره. او یک بار این کار با آب انجام داده و حالا اون را با آتش ملتحب انجام خواهد داد. اون همونطور که انبیا گفتهاند انجام خواهد شد و فکر نکنید که خدا تأخیر میکنه چون که زمانها در دست خدا هستن و یادتون باشه بنابه گفته دوم تسالونیکیان باب دو وقتی که ایسای مسیح دوباره بازگردد این آخرین شانس برای ایمان آوردن خواهد بود خدا نمیخواد که کسی حلاک بشه او میخواد همه توبه کنند. پس تنها دلیلی که مسیح هنوز باز نگشته و این سلسله وقای مربوط به روز خداوند انجام نشده این هست که خدا میخواد انجیل به سراسر زمین برسه و من فکر می کنم این بسیار زیباست و نمیخوام شما همین رو فراموش کنید پس سعی کنید به این کاملا توجه داشته باشید او میخواد به ما فرصت بده که این انجیل رو به تمام جهان برسونید چون او انسانها رو دوست داره و میخواد فرصتهای زیادی برای پذیرفتن او به اونها بده عیسی در بالای کوه زیتون گفته و این مجده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملتها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می رسد فکر می کنم این بسیار هیجان انگیزه معنیش اینه که روزی بعضی از ایمانداران شاید یک مبشر و شاید شخصی ناشی و یا یک شبان در حال موعظه کردن برای برقی غیر ایمانداران باشند و در اون لحظه خداوند خواهد گفت حالا میتونم پرده پردر و پایین بیارم آخرین نفر انجیل رو شنید پتروس گفته ما میتونیم، رسیدن این روز رو نزدیک کنید. چطور میتونیم این روز رو جلو بندازیم پتروس میگه منتظر اون باشید و آمدن اون رو تسریع کنید تنها روشی که میتونید آمدن این روز رو جلو بندازید این هست که انجیل او رو برای کسانی که هرگز اون رو نشنیدن موعظه کنید و برای مسیح شهادت بدید پتروس میگه یکی از دلایلی که او هنوز نیومده اینه که او انسان‌ها رو دوست داره او خدای محبت هست و دلش نمیخواد که هیچکس کس حلاک بشه او میخواد به ما فرصت بده که ببینیم گناهکاران بیشتری توبه میکنند در دوم پتروس باب سه متن حیرت انگیزی هست و اون روز خداوند هست اون بازگشت سانبیه مسیح هست و وقتی به داستان حیرتنگیز بازگشت سانبیه مسیح گوش میکنیم سوالی که باید بپرسیم اینه ما باید چه جور انسانی باشیم آیا خدا با مهربانی منتظر شما هست که هدیه بزرگ نجات او را بپذیرید پس اون رو به تاخیر نندازید. چون که شما هیچ تضمینی برای فردا ندارید من بسیار خوشحالم که شما مجده انجیل رو و محبت خدا رو با عده بیشتری در میون میذارید شنوندگان عزیز آیا شما هدیه حیات ابدی رو توسط خداوند ما عیسی مسیح دریافت کردین؟ اگر نکردین از شما دعوت می‌کنیم که امروز عیسی رو به عنوان خداوند و ناجی خودتون بپذیرین و به اون اعتماد کنین تا اینکه بتونین با شادی منتظر بازگشت اون باشین. عیسی مسیح باز خواهد گشت و این منبع امید برای کساییه که اون رو میشناسن اما کسانی که هدیه اون رو رد کردن به شدت داوری خواهند شد اگه شما پیرو مسیح هستید درس امروز ما به شما یاداوری میکنه طوری زندگی کنید که شهادت شما قوی و پر از محبت باشه تا اینکه به خاطر شهادت شما بسیاری به عیسای مسیح ایمان بیارن حالا وقتی که قبلا از این آگاه هستید مراقب باشید که توسط افراد بی بند و بار به راه خطا نرین، بلکه در فیز و شناخت خداوندتون عیسی مسیح رشد کنید. جلال از آن باد از حال تا آباد. آمین.